حکایت، یکی از وزرا به زیر دستان رحم کردی و صلاح ایشان را به خیر توسط نمودی، اتفاقاً به خطا به ملک گرفتار آمد، همگران در استخلاص او سعی کردند و موکلان در معاقبتش ملاطفت نمودند و بزرگان ذکر سیرت خوبش به افواه بگفتند تا ملک از سر عطا به او درگذشت. گذشت. صاحب دلی بر این اطلاع یافت و گفت تا دل دوستان به داری بوستان پدر فروخته به. پختن دیگ نیخواهان را هرچه رخت سراست سوخته به. با بدندیش هم نکوگی کن، دهن سگ به لغمه دوخته به،